درود بر همه شما شنوندگان وفادار رادیو البورز خبرهای دانمایک در هفته ای که گذشت رو به سعه شما عزیزا میرسونم با ما همراه باشید. جریمه شرکت مرسد در روسیه. سازمان ضد انحصار روسیه شرکت کشینانی مرسد لاین وزوک ترین خطوط کشیرانی جهان و چهار شرکت کشیرانی جهان دیگر را در مجموع 85 میلیون کرون جریمه کرده است ادامه می‌شود این چند شرکت برای تعیین نرخ حمل و نقل بین سن پترزبورگ روسیه و جنوب شرق آسیا با یکدیگر تبانی کردهاند. مخالفت وزیر همگرایی با های نوجوان دولت دارماک سال گذشته در اقدامی مناقشه برانگیز دختران زیر سن قانونی پناهجو را از شوهران خود در مراکز پناهجویی جدا کرد اما اخیرا پارلمان بعد از انجام تحقیقات این اقدام دولت را غیرقانونی اعلام کرد خانم استوربگ وزیر مهاجرت و همگرایی بعد از دریافت حکم پارلمان اعلام کرد که این حکم پیروی از این حکم پیروی نخواهد کرد و با آن مخالف است رئیس حزب مردم دانمارک خواستار زوب شدن یخ روابط قرب با روسیه شده است وی در نامه هفتگی خود به اعضای حزب نوشت که وقت آن رسیده که تحریم سال 2014 مورد بازبینی قرار گیرد چون به نظر می رسد کارساز نبوده و در واقع به موقعیت پوتین کمک کرده و استحکام بخشیده است شرکت دانمارکی دونگ انرژی قصد دارد تا سال 2023 تمام استفاده از زغال سنگ در تمامی نیروگاه خود را متوقف سازد. تخمین زده شود چهل درصد کل برق تولیدی در جهان با استفاده از زغال سنگ حاصل می شود که بیشترین نشت گاز کربنیک را دارد. دانمارک موفق شده بین سالهای 2006 تا 2016 میزان گاره‌های گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان 25 میلیون تن کاهش دهد. که سهم دنگ از این کاهش 53 درصد بوده است. دنگ از سال 2006 تا کنون در جایگزینی توده های زیستی میزان مصرف زغال سنگ در نیروگاه خود،, خود را تا 73 درصد کاهش داده است. استقبال شهروندان دانمارک از گفته های رئیس مدرسه عوام بریتانیا علیه ترامپ پس از فراخان اینترنتی منع ورود دونالد ترامپ به بریتانیا که صدها هزار بریتانیایی آن را امضا کردن حالا جان, جان, جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا میگوید با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجلس بریتانیا به شدت مخالف است جان برکو دوشنبه در مجلس گفت پیش از دستور من ورود مسلمانان با آمریکا من مخالف حضور دونالد ترامپ در و بودم امروز پس از عملی شدن این فرمان بیش از گذشته با سخنرانی دونالد ترامپ در وستمینستر مخالف هستم گفته‌های رئیس‌جمهور مجلس انگلستان باعث واساب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌های دانمارک داشت فیلم فروشنده در دانمارک به نمایش در خواهد آمد فیلم فروشنده هفتمین فیلم بلند خر فرهادی در مراسم اختتامیه جشنواره کن جایزه بهترین فیلمنامه اسغر فرهادی رسید و, فرها و حسینی هم برنده بهترین بازیگر مرد شد فیلم فروشنده در پایان زمان اکران خود موفق شد تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمایی ایران بشود فروشنده به عنوان نماینده ایران در اسکار به آکادمی اسکار معرفی شد و موفق شد در لیست نهایی های بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 قرار بگیرند اما به دلیل سیاست های جدید ابلاغ شده از طریف رئیس جمهور آمریکا کارگردان و بازیگران این بازیگران این فیلم از حضور در این مراسم انصراف دادند در این فیلم در 26 فوریه در کوپنهاگ 6 آوریل و در کوپنهاگ و در 13 تا 13 هم تا 26 آوریل در شهر هاوس به نمایش در درمیآید. بزرگترین قایق بادبانی جهان در ساحل شیلنده دانمارک. بزرگترین قایق بادبانی جهان روز گذشته سواحل آلمان را ترک کرد تا پس از عبور از دریای دانمارک و نروژ به صاحب آن که یک میلیاردر روسی است تحویل داده شود. این قایق بادبانی به طور 144 مت شده و دکل میانی آن 90 متر ارتفاع دارد. ساخت بزرگترین قایق بادبانی جهان 417 میلیون یورو هزینه در بر داشته و طراحی اصلی آن را فیلیپ استارک فرانسوی کرده است. رهبر حزب مردم میگوید ما واقعا به این نتیجه شکفت شکفن شکف زده زده شدیم. در شهرهای بزرگ تقریباً هیچ کاری انجام نمیشود در نتیجه شگفت انگیزی برای حزب مردم دارماک است. حزب راست افراطی دارماک به شدت با اعطای تابعیت به مهاجران مخالف است. اگر حزب راست سفراتی در این مبارزه به موفقیت دست یابد و قانون تابعیت دارماک در این زمین اصلاح شود، این کشور به هیچ یک از مهاجران کشورهای اسلامی و غیر قلبی دیگر تابعیت اعطا نخواهد کرد. در دارماک جریان راست افراتی همکنون عضو دولت است. حزب دو مردم دارماک در انتخابات ماه جوان در رتبه دوم قرار گرفت در این میان انزجار عمومی از یک تیراندازی که پس از یک مهاجر فرسینی انجام داده بود و دو نفر را کشت و پنج نفر را هم زخمی کرد به کسب این نتیجه کمک کرد این حزب در شرایطی در دارماک اعلام حضور کرده که محبوبیت احزاب راستگرا در اروپا روبه افسایش است شعار عقرب احزاب راستگرا در کشورهای اروپایی اتخاذ تس سیاست های سختگیرانه در قبال افراد خارجی و به خصوص پناهجویان است. جمع‌آوری 90 میلیون کرون در مراسم خیریه توسط مردم دانمارک در یک مراسم سالانه برای کمک به کودکان کشورهای فقیر برگزار گردید که تمامی عواید آن بدون هیچ تغییری به های حمایت از کودکان فقیر هدیه می شود در این رخداد یک هفته ای در سال جاری رکورد جدیدی به سر رسید بیش از آن که بیش از 90 میلیون کرون برای کمک توسط مردم دارمارک جمع بری شد این مراسم که چند سالی متوالیست روند سودی در میزان پوچره این مبلغ خیلی مبلغ عجیبی بوده رئیس مجلس دارماک از دعوت و ملاقات با سفیر ایران خودداری کرد خانوم گیسورگ که رهبر پیشین حزب دنگسفولک پارتی هم هست، دلیل خودداری از ملاقات با سفیر جمهوری اسلامی را پرهیز حمید بیات، سفیر جمهوری اسلامی از دست دادن با وی در مهمانی سال گذشته مدرسه دارماک عنوان کرد. رئیس مدرسه دارماک گفته است که در مهمانی سال گذشته این آقا از دست دادن با من خودداری کرد و من هم نامان را در مهمانی امساق قرار ندادم. این در حالی است که خانم کیسگورد سابقه سفر به ایران و رعایت کامل پوشش اسلامی و حجاب را هم دارد. تندرستیتون پایدار عزیزم